دوی بارون داره میاد صدای بارون داره میاد کی قزل خون داره میاد ای عاشق خبر خبر یه پهلبون داره میاد ای عاشق خبر خبر یه پهلبون داره میاد بگو صدای بارون داره میاد صدای بارون داره میاد چی غزل خون داره میاد آیا شگاه خبر خبر یه پهلمون داره میاد آیا شگاه خبر خبر دست بیاد بالاداد لاه دلبری اومد اومد با چشمای هی اومد اومد لاه دلوری اومد با چشمای هیداری اومد؟ زمان. عجب دل آورید برای آخر زمان عجب دل آورید صدای بارون صدای بارون داره میاد صدای بارون جونم یکی قزر خون داره میاد یکی قزر خون آیا شگاه خبر خبر خبر یه پهلمون داره میاد آیا شگفت؟ دست بیاد ولار. ای بهترین مضمون گازل، ای بهترین مضمون گازل. شیرین, شیرین تری از جامعه, جامعه اثر با, با همه سادگی میگم میاد. دوست دارم از روز ازار. با, با همه صاد از روز عزر صدای بارون داره میاد صدای بارون آد یکی غزر خون داره میاد آی آشگاه خبر خبر یه پحله داره میاد آی آشگاه اینو بلدی بگونیه سینما سپر می میگم امام علی سینا مو سفارش می‌کنم میگم امام علی عالم خبر می‌کنم میگم امام علی عالم خبر می‌کنم بگید بالا مزنه ها بگید بالا مزنه ها فقط علی امیر بگید بدم از نه فقط علی امیر هر کی اقا نمیخواد باید بره بمیره هر کی اقا نمیخواد یک دقیقه علی علی علی علی هیئت بیت زهرا سلام الله علیها tzds.ir